شد بهاران در این ماه مبارک قلوب امتوهی توهی از غم سوی تبارک قلوب بر شما باد مبارک ای محبان حق این لیانی و ختم قرآن حق ای خوشا ختم قرآن خدا آمده سین لبریز از اشق و صفا آمده ای خوش آختم قرآن خدا آمده سین لبریز از عشق و صفا آمده ده ده ای دریغا خاک ماهرم از آن رود با نسیم, نسیم تراویح و از آن می بر دل ما شرر رای فراغ جان ما را راز از شرر می ای خوشاخت می قرآن خدا آمده سین لبریز از اشق و صفا آمده ای خوشاخت می قرآن خدا آمده سین لبریز از اشق و صفا آمده روز مشر شفاعت از شما می کند نزد ایزد برای تن دعا می کند چون در این ما مهمان خدا بوده اید از خصومات و کینه ها جدا بوده ای خوش می قرآن خدا آمده سینه لب ریز از اشق و صفا آمده ای خوش آختم قرآن خدا آمده سینه لب از اشق و آمده شد بهاران در این ماه مبارک قلوب امتوهی از مسوی طبار قلوب بر شما بعد مبارک این محبان حق این لیالی خدر ختم قرآن حق ای خوش آختم قرآن خدا آمده سین لبریز از عشق و صفا آمده ای خوش آختم قرآن خدا آمده سین لبریز از عشق و آمده